سحیفه معرفت شرح دعای هفته سحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی جلسه چارده بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و الله علی نبینا و آله تیبین الطاهرین المعسومین لا بقیت الله فی الارزین امام سجاد علیه الصلا والسلام در صحیفه سجادیه راههای مختلفی را که یک انسان را از بدیها باز بدارد انس با حضرت حق و رابطه عبودیت و بندگی حقیقی را به او بیاموزد هدف خلقت را تعلیم داده و حرکت درست در مسیر هدف خلقت را به این انسانها بنمایاند در قالب دعاها و مناجاتها به ما تعلیم میدهد از جمله اونها دعای هیبده همه صحیفه سجادیه است که در طی جلساتی که تا کنون با هم داشتیم تمام مطالب فعلا در این دعا پیرامون یک است، اما از ابعاد مختلف اون موضوع چی بود موضوعی که خداوند در قرآن کریم هم در جای جای قرآن من جمله آیه 200 و 201 سوره اعراف و آیه 25 سوره انعام به ویژه به ما تذکر داده بود که بدانید یک دشمن سرسختی دارید به نام ابلیس و شیطان که عوامل <تصفح> مختلف شیطانی را فراهم میکند که شما این ها را از راه بدر کند ولی این دشمن چگونه میتواند؟ نکته ای که امام سجاد علیه صلات و در این دعا روی او خیلی تکیه کردن که دو جنبه مختلف را به ما تعلیم دهند یکی در این جهت بود که این دشمن سرسخت و این شیطان از طریق نفوظ در نفس ما و دل و قلب ما و تغییر حالات نفسانی و قلبی قلبیست که میتواند این کار را انجام دهد این یه نکته بسیار مهم و نکته دوم بعد از اون که ما دانستیم ابلیس و شیطان و شیطنت های شیطان از طریق نفوذ در نفس و قلب ماست که میتواند همه جواره و های ما را در خدمت خود بگیرد که افعال شیطانی از اون سر بزند چه باید بکنیم که جلوگیری بکنیم در این رابطه در این فراز از دعا اللهملا تجعله او فی قلوبنا مدخلا اول از خداوند درخواست میکند خدایا از تو میخواهم که ای خدای من بارلاها شیطان را یا در ورود به قلب من جوری قرار نده که بتواند این کار رو بکند خانه دل مرا به گونه ای قرار مده که در او به سوی شیطان باز شود اما ادامه این یک نکته بسیار ظریف و دقیقی که حقیقتا باید توجه بیشتری کرد این نکته است ولا تو تنم له فیما لدینا منزلا خدایا از تو می‌خواهم کمکم کنی که آنچه نزد ماست برای او جایگاه قرار مده یعنی این قلب من این خانه دل من برای شیطان محل اقامت و توتن شیطان نشود به این نکته انایت بفرمایید معمولا وقتی انسان ها یا موجودی که اختیار و اراده دارد وارد شهری می شود یا وارد خانهی می شود ورود به این شهر و خانه قبل از اون که وارد شود اول باید ببینیم می تونه وارد بشه یا نه مثلا میخواد وارد یک کشوری بشه اصلا اجازه بش نمیدن ویزا بش نمیدن امکان ورود به اون کشور یا شهر رو ندارد حالا اگر اجازه ورود پیدا کرد، توان لازم ورود به آن کشور یا شهر براش پیدا شد، حالا وارد شده، گاهی ممکنه به صورت مسافر مقطعی یه روزی، چهار روزی، ده روزی، بیس روزی بماند و از اونجا خارج شود. اما در یک فرض دیگر، وقتی این فرد وارد آن کشور یا اون شهر یا اون خانه می شود، ممکنه در اونجا توتن اختیار کند، اونجا رو وطن خودش قرار بده یعنی چی؟ یعنی دیگه از مسافرت و مندن مرد تهی خارج می شود ادامه میده مندنشو حالا سوال می کنیم چه می شود وقتی یک انسان یا هر موجود مختار دیگری وارد یک جایی شد چرا در یک صورت حاضر نیست ادامه بده گاهی دلش می خواد زودتر از اونجا خارج شود گاهی یکی دو هفته رو تحمل میکنه بعد میبینه مشکل براش از اونجا خارج میشه. گاهی ممکنه پنج ماه و شش ماه و یک سال بماند ولی باز میبینه امکان موندن در اینجا براش نیست از اونجا خارج میشه. در چه صورتی است وقتی وارد شد میگه اینجا رو وطن انتخاب میکنم یعنی همین جا میمونم ادامه موجودیت و زندگیم رو در همین جا میپذیرم. آیا جز این مطلبی که الان میخوام ارز کنم میشه گفت چیز دیگری است؟ وقتی فردی وارد جایی شد دید شرایط مناسب نیست، آرامش نداره، امکان خوش بودن در اونجا براش نیست، اهدافی که دارد براش حاصل نمیشه نمیرسه به خواسته های خودش میگه پس اینجا به درد من نمیخوره. من از اینجا خارج بشم یه جای دیگر رو انتخاب کنم شاید در اونجا راحت تر باشم. به اقتضای هدفی که انسان دارد جایی را که برمیگزیند اونجا را یا به صورت توقف مقطعی میپذیرد یا به صورت سکونت همیشگی و توتون حاصل کردن. مثلا فرض کنید قصد کسی، ثروت و فعالیت های اقتصادی و فراهم آوردن امکانات مالی باشد میگه فلان شهر یا فلان کشور را انتخاب میکنم میروم در اونجا تا بتوانم درآمد مالی بهتری پیدا کنم پنج ماه و یک سالی میماند میبیند شرایط برای درآمد مالی او مناسب نیست میگه اینجا نمیشه وطن کرد <تص> پس من از اینجا خارج می شود، به جای دیگری می رود. ممکن است دو جا، سه جا، چهار جا، چه بسا تغییر مکان بدهد. اما ای رو که دید این خواسته او تأمین می شود مسلمان اونجا می ماند. حالا این مثال را عوض کنیم. به جای مثال اقتصادی مثال علمی بزنیم. باز همین طوره اگر کسی به قصد فراگیری علم از این شهر به اون شهر از این کشور به اون کشور از این دانشگاه به اون دانشگاه از این کتاب خونه به اون کتاب خونه، هی مسافرت می کنه. اونجاهایی که می بیند، این خواسته او تمین نمیشود، شود. فرا نمیگیرد عوامل رشد علمیش نیست آرامش پیدا نمیکنه. ولی اگر به جایی رسید دید تمام عوااملی که این خاسته او که فراگیری علم است تامین می شود طبیعتا در اونجا توتن اختیار می کند و خوشحالم هست از اینکه در جایی قرار گرفته که های او تأمین می شود پس ورود یک موجود مختار در یک جا شرایط مناسب نباشد به صورت مسافر مقتعی کوتاه مدت هست و از اونجا رحل اقامت را برمیکیند و به جای دیگری میرود ولی اگر در جایی که وارد شد دید شرایط مناسب است میگه قطعا همینجا خواهم موند و اینجا رو برای خودم محل سقنا انتخاب میکنم که این میشه وطن اختیار کردن امام سجاد علیه السلام در این فراز از دعای هیوده همه صحیفه سجادیه فراز قبلی فرمود اللهم لا تجعل له فی قلوبنا مدخلا خدای یستم میخوام که شیطان در دل من راه ورود پیدا نکنه حالا اگر خدای نکرده راه ورود پیدا کرد قفلتی سر زد که در بحث قبلی عرض کردم شیطانی یک روزنه‌ای پیدا کرد مثل جریان خون در رگ که به این مسیر باریک هم میتواند برای جریان خود سود بجوید حالا اگر انسانی بود که شیطان بر دل او راه پیدا کرد این انسان باید بداند شیطان راه یافته در دل او می شود مثل مسافری مقطعی کوتاه مدت در این خانه مند بگه اینجا جای من نیست نمیتوانم توانم خواسته من تأمین نمی شود پس از این خانه کوچ می کنم می روم یا میتواند بگوید چه جای مناسب خوبی برای من فراهم شد پس باید در اینجا من سکنا بگزینم و اینجا وطن من شود گونه که اگر میکروبی وارد یک فضایی شد شرایط پرورش و رشد و تکثیر میکروب در اون فضا فراهم نباشد از بین میرود خارج میشود ولی اگر محیط برای رشد میکروب و آلودگی ها فراهم بود از آن مکان و از آن فضا خارج نمی شود چه می شود که شیطان در خانه دن ما لانه می کند و این لانه کردن منزل همیشگی او می شود به فرموده امام سجاد علیه السلام ولا تو تنن له فی ما لدینا منزلا این منزل شدن قلب من برای شیطان ای خدا به صورت وطن در نیاد چرا این منم که زمینه وجودیم را به گونه ای فراهم میکنم که شیطان میبینه جای مناسبیه وقتی همچنان جای مناسبی رو پیدا کرده چرا خارج شود؟ ببینید توضیحی که خدمتتون ارز کردم گفتم موجود مختار خب ابلیس هم مثل ما انسان ها موجود دو بعدیس مختار است بر مبنای اراده و اختیار خود این کارا رو انجام میده گفتیم هر موجود مختار مثل ما انسان ها وقتی جایی وارد میشوند در چه صورتی میگوین اینجا جای ما نیست برویم در صورتی که ببینن هدف اونها تامین نمیشود، به خواستهشون نمیرسن و در چه صورتی اونجا ساکن دائمی میشوند و اونجا رو وطن خودشون قرار میدن ببینن که خوب دارن به خواستهاشون میرسن شیطان اگر در خانه دلی وارد شد در چه صورتی اونجا را وطن خود قرار نمیدهد، در صورتی که ببیند خواسته های او تأمین نمیشود. شود خواسته های شیطان چیست؟ اقوا، زلالت، گمراه کردن، آلوده ساختن، به گناه واداشتن. پس اگر من میخواهم شیطان در خانه دل من سکنان نگزیند و دائمی نماند اگر هم وارد شده بیرونش برانم مثل میکروبی که اگه وارد بدن من شد حالا غفلت کردم بنا به هر جهتی میکروب وارد بدن من شد نگهش دارم شرایط جسمانیم رو به گونهای فراهم کنم که این میکروب کاملا در بدن من رشد کند یا زمینه از بین بردنش رو فراهم کنم اگر زهر وارد بدن من شد پادزهر باید وارد کنم شیطان زهر روح من است شیطان سم انسانیت است شیطان آمل آلود ساختن جان و دل و فکر و روح انسانی است حالا وارد قلب من شده پادزهری که این سم را از بین ببره چیه؟ توجه به خدا عبادت بیشتر مطالعه درست قرائت قرآن رفتن در جمع مؤمنین احکر بودن ذکر واقعی به زبان جاری کردند به برخی مستحبات بیشتر چسبیدند بنده بارها و بارها اتفاق افتاده این رو با کمال اعتقاد و جدیت میگویم به ویژه اگر جوانان عزیزی که در دوران حساس جوانی زندگی میکنند و این سخنان را میشنوند به ویژه روی سخنم با آنان است گرچه مسنترها و همه ماها به این بحث نیازمندیم اما در رابطه با جوان این رو حساسیت بیشتری دارم خیلی وقتها جوانهای دانشجو به بنده مراجعه میکنند و میگویند در مقابل وسواس شیطانی مشکل داریم ممکن شیطان ما رو زمین بزنه بر ما غلبه کنه ما رو تحریک کنه ما چه کنیم که بر شیطان پیروز شویم و بتوانیم سالم زندگی کنیم معمولا با این عزیزان بنده این گونه سخن میگم میگم شما اگر بناس در یک میدان کشتی کشتی بگیرید در چه صورتی ممکن است که بر حریفتون غلبه کنید تمرین مناسب رو انجام بدید تغذیه مناسب رو داشته باشید ورزشی که لازم است برای تداوم کارتون در پیش بگیرید در پیش میگیرید یا هر جور غذا میخورید هر جور عمل میکنید میخوابید و تمبلی میکنید هیچ تمرینی انجام نمیدید روز مسابقه میادید مثلا سر صحنه مسابقه و رو تشک کشتی حاضر میشوید هیچ کس این رو نمیپذیره اگر یک پشتی و یک برخورد بدنی شما این مقدار تقضیه آداب میخواد تربیت بدنی آداب میخواد تمرین و ممارست لازم داره با زیر نظر مربی باشید شما رو بارها امتحان میکنه میگه تو این زمینه ضعیفید، بیشتر کار کنید تو این زمینه خوبه به حد کافی رسیدید آیا غلبه بردشمنی مثل شیطان؟ در برخوردهای روحی با اون عظمت ما استاد نمیخوایم راهنما نمیخوایم تمرین نمیخوایم ممارست لازم نمیخوایم همونطوری که در قسمت قبلی جلسه گذشته عرض کردم وقتی امام سجاد علیه السلام به خدا عرض می دارد که خدایا کمکم کن شیطان راه ورود به دل من پیدا نکند حدیث از پیغمبر خوندم که رسول گرامی اسلام فرمودن شیطان همون جوری تو بدن انسان دل انسان نفوذ می کنه که خون تو رگها نفوذ می کنه ادامه همون حدیث سخنی دارد که حضرت یکی از راه‌های عملی برای اینکه نگذار شیطان وارد بشه یا اگر وارد شده مشکل پیدا کنه و نتونه دوام بیاره اینگونه فرمودن فرمودند و مجاریه بالجوع. این مجاری مسیر جریان شیطان در وجودتون را با جوع گرسنگی روزه تنگ کنید ببینید اگر الان یکی از مشکلاتی که در علم پزشکی برای ما انسانها مطرح شده میگن رگها گرفته شد یعنی این خون الان میخواد داخل رگ عبور کنه عواملی داخل رگ رسوب کرده امکان جریان سالم خون نیست میان یک کارایی میکنن اون عوامل رو کنار میزنن تا این مسیر باز بشه خون به راحتی عبور کنه در رابطه شیطان و وجود ما درست قضیه به عکس اگر مسیر باز بود و هم وار بود شیطان میاد. پیغمبر میگه میدونید چجوری میتونید این مسیر رو ببندید؟ میدونید چجوری میتونید این در رو کیپ کنید که امکان نفوذ شیطان نباشه؟ زَیقو زیخ کنید، تن کنید، باریک کنید، نزارید بتونه وارد بشه با گرسنگی یا روزه. یعنی چی به عنوان مثال؟ یکی از شهوت‌هایی که به عنوان نمونه است، یکی از شهوت‌هایی که ابلیس از این طریق میتواند ما را به گناه وادار کند شهوت شکمه میخوام بخورم لذت ببرم شکم پرستی کنم لذاب ممکنه گرون فروشی کنم گناه هست دزدی کنم گناه هست مال مردم رو بگیرم گناه هست رشوه بگیرم گناه هست این حالتهایی که در اثر شهوت شکم برای من ایجاد میشه حالا بیان با گرسنگی یک آلی ترین حالت گرسنگی روزه من تصمیم بگیرم ماهی چند روز ولو روزه مستحبی بگیرم حالا دلم میخواد بخورم جلو دل رو بگیرم تمایل به خوردن دارم استادگی کنم این استادگی کردنها مرا بر این عامل شهوانی قلبه میدهد گونه که خداوند در قرآن کریم فرمودن کتب کما کتب علالذین من قبلكم لعلكم تتقون روزه بر شما مقرر شد همون طوری که بر قبلی ها هم مقرر شده بود که چه شود باشد که در شما تقوا ایجاد کنند این قدرت تقوا گفتیم از کلمه وقایه خیشتنداری کنترل خیشتن یکی از اثرات روزه این است که شما قدرت ایستادگی در مقابل خاسته ها پیدا می کنید و خودتون رو کنترل می کنید حالا اگر شیطان وارد قلب شد دید شما روزه مستحبی می جلو شهوت رو می گیرید می میگی اینجا جای من نیست نمی توتن اختیار کنه این از این فضا باید خارج بشه خب برای اینکه از این فضا خارج کنیم و نگذاریم در دل ما ریشه بدواند و در اونجا مقیم شود پس این نوع از اعمال رو باید بیشتر کنیم لذا عواملی که با شیطان سازگار نیست نماز اضافه خوندن روزه اضافه گرفتن از جمع گناهکاران فاصله گرفتن تو مجلس لحو لعب و لغو نرفتن اینا همه باعث می شود شیطان احساس کند مهره مناسبی برای او نیستیم و لذا قطع امید کند و خارج شود ولی اگر ببیند گوش به فرمان او می و تابع به های او هستیم طبیعتا در این فضا باقی می ماند پس عبارت رو دقت کنید ولا تو تنن نلهو فی ما لدینا منزلا خدایا شیطان را در قلب من و دل من منزلی برایش که وطن اختیار کند به قرار نده این فی ما لدینا که در نزد ماست یعنی ما این که یه چیزایی در وجود من درست کردیم که این تازه وارد حاضر نمیشه از اینجا خارج بشه میگه وطن خوبیه کلمه فیما لدینا رو باید کمی دقت کرد فیما لدینا اون چه که در نزد ماست یعنی خدایا کمک کن من کارایی که باب میل شیطان نیست انجام بدم تا از من خوشش نیاد خسته بشه در اینجا نمانه ولی وقتی میبینه که من متیع او هستم فرد سر براهیم. به خواسته های او جواب مثبت میدم میگه خب اینجا جایی است که من همینجا بمانم مناسب است پس توجه پیدا کنیم دو نکته کلی که اشاره کردم امام سجاد علیه الصلاه و السلام در این دعا هی دارن با عبارات های مختلف به ما توجه میدن نکته اول شیطان دشمنه شیطان میخواهد در ما نفوذ کنه میخواد عواملی شو در درون ما رخنه براش ایجاد کنه حالا که در درون ما رخنه کردن اینجا منزل اختیار کنند، از این پایگاه عوامل انحراف خودشون رو به صور مختلف بروز بدن همون جوری که در خطبه هفتم نهج البلاغه آمده بود و چند جلسه گذشته اشاره کردم امام علیه السلام فرمودن این سنه ای که شیطان رو میپذیرند. و اونها رو برای خودشون ملاک قرار میدن شیطان میگه خانه دل اینها لانه خوبی است که من در اونجا تخم گذاری کنم و تخمامو تبدیل به جوجه و پرنده کنم و در این فضا بچه هام و هامو برورش بدم یعنی دل ما میتواند جایی شود که شیطان در اونجا احساس و آرامش و امنیت کند و از این دل برای اهداف خودش مهرهای انحرافی پرورش بده و به عکس شیطان می تواند اگر وارد دل ما شده در اثر غفلت همون جوری که حضرت ایسا فرمود مثل ماریس که در کمین است ببینه روزنه باز میشه وارد بشه یا نه اگر شیطان می تواند وارد شود حالا وارد شد ببینه ما نمیخوایم باش کنار بیایم لذا اونچه چه که او دوست نمی دارد انجام میدیم در حدیثی از معصوم علیه السلام آمده است هر چیزی که جوابش رو دادید آرامش پیدا می‌کنه از شما راضی میشه الا هوای نفس که اگر جوابش رو دادی ارضا میشه. هی میخواد بیشتر شما رو وادار کنه تا در این زمینه مطیع باشید هوای نفس تحریک شیطان اگر جواب مثبت به او دادی دست بردار نیست شما رو در این مسیر انقدر حرکت میدهد. تا بیچاره سازد لذا خانه دل ما شود محل سکونت همیشگی عوامل ابلیسی پس از خدا بخواهیم تا ما را یاری کند اون چرا که شیطان دوست نمی دارد و پروردگار عالم می پذیرد اون را بیشتر انجام بدیم و عمل کنیم تا زمینه فرار شیطان و عوامل شیطانی را از خانه دلمون فراهم کنیم خدایا خانه دل ما را محل نزول رحمت و انایت خودت قرار بده و خانه دل ما را از وسه های شیطان در امان بدار و اگر شیطان چشم امیدی به خانه دل ما دوخته است با موفقیت در اعمال عبادی واجب و مستحب امیدش را ناامید بگردان و سلام علیکم